ایرانوج بازنگری در تاریخ قلمرو میانی اینا اتفاق تو متون اسلامی هم هست مثلا میان غزالی هم حتی میینه اعتقادی که کیومرث کس فرزندان حضرت آدم هست آدم اول بشر هم که بر اساس متون سامی یه چیز نزدیک به 7000 سال یا بعضی حتی 5000 سال پیش از میلاد تلقی میکنن بعد بر اساس همین آدم اول بشر چون کیومرس فرزند آدم اول بشر تلقی میشه بر اساس اون تاریخ ها رو جمع میکنند چطور این هند و اروپاییای اولیه ما یه منطقه‌ایو در روزگار کهنه که شده یخبندان هست در شرق سوریه بهش دست یافتن و ازش اطلاعات داره و اینجا گیس کردن اینا که نوکالیس ما باید بدون که اگر مهاجرت متأخر بوده ارتباط بین یخمنها و این آبشودا این سرزمین خیلی غربی چجوری میتونه برقرار بشه اینا رو میشناختن و حضور کم‌تر داشته یه تاریخه‌ای در آوردن میگن کیومرث 3698 پیش از بیلات جمشید 3598 پیش از میراد، یعنی مثلا 5500 سال پیش بعد دیگه اینا رو میچسبونن و میان میرسن تا دارا و اینا یک عده دیگه هم هستن که اصلا میگن این فرمان رویان رو رویان پیش کیانی مربوط به روزگاران کوهن ایران هم. اما چیزی که خیلی جالب هستش برای شخص من اقلا خیلی جالبه اینه که ما توی اسطوره های ودایی که با ما باید اشتراک خواهدتا داشته باشن جمشید رو داری اولین انسان حالا اون شخصیت منو رو هم داریم راجع به اونم بعدا حرف میزنیم که یه جورایی بعضیان معتقدن که منو یک جوری خود جامشیده با یک حاله تازهور جدیدتر. به نام ایزد یکتاب و عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی خدمت همه شنوندگان گرامی برنامه ایران وچ چه موافقان برنامه و چه مخالفان و منتقدان برنامه همچنان منتظر شنیدن پیام ها و انتقادات و پیشنهادات شما به بخصوص مخالفین و منتقدین برنامه هستیم از طریق ایمیل اینفو اتصدای امید کام و به اضافه شماره پیامک 3068 22 در قسمت دوازده هم. ما بحث اصلی رو شروع کردیم و طبق سیاق بحثی که شروع شد ما فکر کنم بحث نوار زمانی و بحث این مکان ایرانویج خیلی طول بکشه با توجه به هایی که هستش کی اصلا این مکان ایرانویج رو ما پیدا بکنیم و مبدا اصلی به اضافه زمانش که اصلا این زمانش چند هزار سال پیش شروع میشه کی عمرش مال چند هزار سال پیش هست کی عمرش دوره است یا خودش یک انسان هست یا نه یه چیزی ما بین این دو هستش متصفان در قسمت گذشته به نوبت به جناب آقای کریمی نرسید ما در این قسمت از جناب آقای سعید کریمی زبانشناسی این برنامه شروع میکنیم در مورد کلمه کیومرس که تقریبا همه تو اینجا اتفاق نظر دارن که به عنوان اولین انسان و به نظر حکیم عبالقاسم فردوسی این مرد بزرگ تاریخ ایران زمین هم به عنوان اولین انسان و به نظر برخی از متون کوهن پارسی به عنوان اولین پادشاه بمایه پادشاه هزارانی که توسط مردم انتخاب شده هستش اصلا این کلمه کیومرس چی هستش و این کلمه و آوای اون و آواهای اون از دید زبانهای مختلف به چه معنا هستش و شعن نزول این کلمه و این پادشاه چی هستش در تاریخ به نام خدا و دروت خدمت شعنگان گرامی خب ما در ورنامه پنجم و بود که یک سری کتاب معرفی کردیم خدمت شنوندگان بود بله. الان اینجا نمونهش پیدا میشه که چرا گفتیم کتاب مطالعه بشه در مورد واجه هیومنس باید خدمتون عرض کنم که از دو بخش تشکیل شده یعنی یک نام مرکبه یعنی گیا و مرتر و زبان اوستایی که این در زبان پهلوی به نام گایومرت هم ای که ما در متن پولیوت کیشان هم می‌بینیم اینو خب این از دو تا بخش تشکیل شده یکی همون گایا به معنای زندگی و یکی مرتا به معنی مردن خب کتابی که من معرفی کردم واسه گفتن کوچ روان دیگه بعد مطالعه که یک کتابی بود من باید یکی در مورد شناسی خب واژه می‌خوام این گ چجوری شده ک که هم واژه گگ بود و حالا تو فارسی ک خونده میشه میدون مرتب بوده و تو فارسی امروز س سه نقطه خونده میشه بعد خدمت عمر شبدی که چجوری اینا تو زبان‌های دیگه تبدیل به ژ ز و ج شده خب ما در زبانشناسی میایم یه جدولی داریم برای واکه‌ها و همخوان‌ها که این جدول میاد اینا رو بر اساس جایگاه تولید یا واژگاهشون و شیوه تولیدشون اینا رو تقسیم بندی میکنه خب ما می‌دونیم که همخان گی یک همخان انسدادیه، یعنی هوا کاملا بسته میشه و بعد خارج میشه این گ میتونه تبدیل به ک بشه چرا چون هر دوتاشون به صورت انصدادی هستن بعد ظالب اینجاست میتونه تبدیل به هم بشه که ما خیلی داریم همین چیزی ها. این به خاطر چیه؟ به خاطر که بام جزء خانواده ب و پ ک و گ چ د اینا همه بهشون میگن خانواده انسدادی گ و ج هم مثلا میتونه باشه مثلا ما اویش اون... مصری همین هم, هم داریم مثلا رو مثلا گ میگن جنات میگن گنت ولی خب اون به خاطر شیوهی توردیشون چون شیوهی توردیش هر دو تاشون انسدادیه من یعنی گ میتونه به بم تبدیل بشه از از یه جایی هم میتونه تبدیل به ج بشه یعنی میتونه انسدادی گ تغییر بشه به انسایشی ج و از اون طریق تبدیل بشه به سایشی ژ و زه پس چی شد؟ پس گه میتونه تبدیل به کی بشه تقریبا تو یک شارخونه قرار میگن گیره اگه اون دیچ نداره یا یعنی تبدیل به کی که تو فارسی هم و کیو داریم میگیم گگا رو بعد خدمتشون عرض شد که میتونه به ب تبدیل بشه همونطور که در یونانی شده ما خیلی داریم که گاهی که در آریایی و که اینا بهش میگن در یونانی به ب شده شده بیو که هم کلمه بیولوژی و ما داریم از اون یعنی شخص باشه بعد این تبدیل به و میشه خود به چوزی... که میتونه ازش آن کلمه حالا فران توضیح میدم بعد از طریق خود این جد تبدیل میشه به ج، یعنی به انسایشی جه و از خود جه ما میرسیم به جه و زه خب این تا اینجاش خدمت از ارز که این کلمه گیم گه مرتب یعنی زندگی و مرگ من مثل چی میگم این اسطوره بعد اینجا ساخته شده باشه باید این واجه هزاران سال ازش بگذره تو یک منطقه مفاهیم دوست قالب بشه خیلی جالبی که کلام فلاسفه میگن چرا انسان ها همین واجه مرد و مردوم از کلمه مرد این مرد میاد یعنی مردن کسی که میمیره جالب اینجاست که از کیونورس به این ور فقط کلمه مردن میمونه چون اون قسمت اول بخش اول که گایه هست دیگه حذف میشه مثلا مشی و مشیانه باید بدید مثلا ریوته در شمال شرق به خصوص صدلشه میشه ما زیاد داریم از این نمونه ها مشی و مشیون مشیون خودش گونه از کلمه مرد هست مره تمتا میخواهی مردن میدید اون قسمت گیاه به زندگی میفته بس اعتقاد داریم که این کیومرس برای همین دارن میگن که اون بشر نخستین، اون زندگی آغازین چرا؟ چون بقیه اصول دیگه این کلمه گیاه را میفته کلمه و, و میتراب و اینا همه از کلمه مردن گرفته شده اینجاست... و میبینیم که همین چیزی که شما میفرمایید اولش زندهایی وای می میمیره و نشون میده که توی اون اسطوره هم اول هم شخصی است که در واقع میمیره میراث یه خدای میرا هستش ما مثلا تو اسطوره های دیگه هم داریم مثلا خدای عزت نیست دیگه خدای عزت نیست یه که میمیرن و غربی ها هم حتی مثلا تو همین هم اصحاب لویاتان که می‌گین می‌گه منظور از لویاتان که به یک دولت زنده مفهوم دولت زنده توی قلب است می‌گه دو... ازش به واسه لویاتان چیه می‌گه لویاتان یه خدای میراست از ما دولت دولت رو که در واقع می‌خوایم به وجود دولت به مسابهت یک خدای میرا می‌خوایم در بیاریم ببخشید اصلا بس این گایا خب گفتیم که می‌تون جدول به کی کیو در قسمت بخش اول فارسیش ما یه قانون داریم نام قانون گیریم که میگه میاد تاهای های و اروپایی هم آریایی که ما میگیم تبدیل میشه به سه سه نقطه ها به سه سه نقطه و اون پس مر... مرته میشه مرس یعنی بعد رو هم میشه کی مرس واسه سه که می نوشتن خب حالا من اومدم ریشه این زندگی رو تو زبان های دیگه هم پیدا کردم مثلا شده گیواس بنی زندگی در زبان لیتوانی این تبدیلی که تو عربی هست همون عینت در لیتوانی دیده میشه بعد این خدمت رو ارسم گ میتونه تبدیل به ج بشه خب حالا میگم میتونه ج اش شکلی شده شده جی و دوباره معنی زندگی در سانسکریت بعد شده جی وک دوباره معنی زندگی در فارسی باستان این ج تبدیل به ز شده زیویک در پهلوی به معنی زنده که الان شما ون زیوم دارید تو فارسی زیستان ون مازادارش میشه به زی زیپن زیستان بله ون مازادار شما واژه‌فزار ون مازادارم ساختیم خیلی قشنگ ریشه‌مندشون میده بعد پس می‌بینیم که هم به صورت گ خودش تو لیتوانی نشون داد به صورت ج در سنگسرید فار فارسی باستان خودش نشون داد بعد حالا می‌بینیم صراغ واجی به صورت G و می‌بینیم در صورت به صورت جی وت به زندگی کردن در چک و اسلوواکی بعد خدمت شما عرض که معنی G جی و جیو به معنی زندگی و زنده در اسلوونی G و به معنی زندگی در اوکراین دوره ژو به معنی زنده در بلغارستان. جیوی به معنی میلیت همش با زیو و زیو کاملا همش است جیوی به معنی زنده در بلاروس دوباره زو به معنی زنده در روسی جیو و جیوت به معنی زنده و زندگی کردن در بوسنی دوره ژو و جیوت در صربستان و در مقدونیه به معنی زنده و زندگی در زیو به معنی زنده و زندگی کردن در اسلاوی کهن کلیسایی بعد داریم می‌بینیم حتی این میاد تو زمان آلمانی میشه زوه که ازش ما با علاقمند زو داریم معنی باقوهش یعنی جایی که جاندارها اونجا مفقوس هستن نگهداری میشن دعید. یعنی می‌بینید این داره به ما نشون میده این چرخش این واژه که این واژه در کدوم منطقه شکل گرفته می‌بینیم مثلا وقتی ما خیلی دیگه می‌ریم سمت آلمانی دیگه می‌بینیم واژه لیو میاد دیگه جایگزینش لایو و اینا جایگزینش میشه خب پس نشون میده که این کیومرس که نشون دهنده زندگی و آغازین این نژاد بوده یا بعضی اعتقاد دارن که نژادهای دیگه هم ازش بوده در کدوم منطقه زبانی قرار میگرفته که همونطور جایی که کردم منطقه ای بوده که فرهنگ اوستایی و پیش گفتم فرهنگ اوستایی فرهنگ سانسکریت و فرهنگ اسلاوی درش چیره بوده دقیقا همین فلات از شمال فلات ایران هستش خب اینجا میبینیم که کلمه یکی دقیقا خوش داره نشون میده که بعد از هزاران سال این مفاهیم تازه در ذهن بشر ساخته شده یعنی اون بشر قبلی مثلا خب چند هزار سال پیش هم بس ما فکر می‌کردم میگفته خب این نژاد ما از کجا شکل گرفته این پرسش همونطور که بر ما پیش می اومده بر اونا پیش می رو دانسته هاشون شنیده هاشون و یا حتی نوشته هایی که داشتن و به دست ما نرسیده اومدن این استروار ساختن بله یعنی استروار میخوری نساختن و من شگفت زده میشم که چطور کسی مثل آقای کریستیانسن میاد چنان می تازه به این تاریخ و میاد میگه مثلا زمان جمشید مثلا برای اندو ایرانیا بوده و پیش از اون برای بومیا بوده. و من واقعا شگفت زده میشم چنین سخن خردسوز و چطور استادای دانشگاه ما پذیرفتن. ریشه به این کوهنی که انقدر این زبان ها اسلاوی از من یاد بگیره. بلغاری از من مثلا اوکراینی از من یاد نگرفته. بوسنیایی از من یاد نگرفته. از من یاد نگرفته. اینا توی هزاران سال زندگی با همدیگه این زبان ساخته شده چطور ممکنه بیاین از یه جایی بیان تو یه جای دیگه بعد از یک واژه بسیار کهن بیان از دلش اسطوره بعد اسطوره در بیارن به به اسطوره یک زبان بومی بله خیلی متشکرم میذان واقعا سوزن بله جناب آقای کریمی در فرصت مناسبم هم داشتون رو فرمودید و خیلی استفاده کردیم و در مورد واژه کیومرث به عنوان اولین انسان یا اولین پادشاه که حالا در موردش صحبت خواهیم که فکر هم دو سه یا چهار جلسه دیگه در مورد کیومرث ما صحبت داریم در واقع ایران مهر گرامی در خدمت شما هستیم هم در ادامه فرمایشات قسمت گذشته که در واقع باقی مونده هنوز بحثتون و به اینکه این که شما مبدع رو از کجا میدونید و به طور تقریبی برسا از پجوهش های خودتون چند هزار سال پیش میدونید دوره یکی و بر دوره ی آغاز تاریخی که ما در موردش صحبت بکنیم درود به شما کارشناسان گرامی و همراهان عزیز برنامه من نمیدونم چرا یا من برداشتم چیز ای بود یا واقعا به هم ریخت اون پیشبینی که شاید همجور شفاهی من احساس میکنم شده بود ما قرار بود یک نوار تاریخی رسم کنیم بله سر اون نقاطی که نقاط ثابتی که توافق داریم بر اساس اصنات. در بله. درزم اون چیزایی که پجروهش من نشون میده اصلا مهم نیست مهمیه که اسناد چی میگن اسناد با سخن بگن بعد حالا یه تحلیلی هم با جمعی انجام بشه من نفهمیدم چرا از کیومرس آغاز کردیم اتفاق مبدع رو ما باید صحبت بکنیم باید مبدع به توافق برسیم بعد بیایم خب من در. الان عرض میکنم خدمتون از نظر من کیومرس 34000 سال پیش بوده دورش بله و جایگاهشم هم بوده زاگروس درست یعنی ما بهتون میدم که هیچ کدوم از دوستانم چه نظری نداره دلیلتو یعنی کیومرس از نقاط ثابتی نیست که ما روی این نوار تاریخی بخوایم دربارش درباره بحث کنیم یه مقدار ما گمان میکنم درباره این نوار اول باید صحبت کنیم بعد من درباره زمان کیومرس و مکان کیومرس دوره اش چرا من اون دوره میدونم انسان نمی دونم نه خب بعد بتونم توضیح بدم خیلی ادعاش گفتن گیزی است و به نظر من این دوستان دانشگاهی بشنمن واقعا قول معروف و هندرس ملحسن نه اصلا واقعا موضوع سود میکشه هزار سال خیلی ادعای بزرگی هست و از به حضورتون که بقیه دوستان هم حتما تاریخ های متفاوتیم و باید رویم این بتا... اتفاقا من عمدن این بحث رو مطرح کردم بره. که واقعا این مساله شروع بشه ما میگن دعوای اول به از صلح آخر ما اول دعوا رو بکنیم بعد در واقع مای نشستی بودیم در, در خانم, خش... خانم دکتر احسانی یک مناظره بود با آی فیروزی بنده هم در معیت دوستان بودم. ماله. روبرومونم حالا دیگه کی بود دو تا دکترای باستان شناسی و یک دکترای زبان شناسی از های معتبر همین کشور، دانشگاه تهران و اینا نشسته بودم من خیلی عادی ها مطرح کردم که خب آقا درباره هایی که الان دانشگاه بیرمنگام سال 2009 کف خلیج فارس پیدا کرده، اینم اکساش که ناسا گرفته، نظرتون چیه؟ این دو آدمای معروفین‌ها اینا. بله. این دو تا دکتر باستانشناس و اون دکتر زبانشناس که ما جالب بود دو تا آقای خانم بودیم اونم دو تا آقای خانومه چیزی که این باستانشناسای برجسته کشور ما به من گفتن گفتن مگه خلیج فارس خوش بوده گفتم زمان یخبندان گفت جام کن آقا 100 میلیون سال خلیج فارس همینجا بوده همین شکلی هم بوده این حرفا چی میزنید تاریخ صحبت کن گفتم آقا اصلا ویل کن تاریخو یخ بوده رو کره زمین یا نبوده گفت خب بوده بله گو اون شاوران که قطب شمال بوده واسه به خلیج فارچ رابطه داره گفتم آقا الان بچهای 4 5 سال هم میتونن تو گوگل جستجو کنن زمان یخ بندان های قطبی بزرگ میشن آبهای کره زمین چون مقدار آبهای کره زمین ثابته ثابته دیگه وقتی که تبدیل به یخ میشن در دو تا قطب خیلی اون دو تا حتی از کره ما هم دیده میشه اونا در زمان یخ آبای آبهای آزاد کره زمین تبدیل به یخ میشن در اونجا صد آبهای کره زمین برف میکنه میره پایین سطحش حدود صد متر در زمان هر یخبندان تقریبا میره پایین این چیزی, اون میشه. این چیزی کاملا شما وقتی هر جا آب رو ببری پایین کن مثلا اون آبراهه مانش بین انگلستان و فرانسه چون عمقش کمه خشک میشه تنگه برینگ بین سیبری و آلاسکا خشک میشه چون عمقش کمتر از متر وقتی آب ها صد متر در زمان یخبندان بشه پایین خشک میشه خلیج فارس هم چون عمقش بین تا 90 متر خشک میشه گفت نه آقا اینا داستان با هم بگو از تاریخ از ایلامیان از کوچه آریه ها بگو تا بهت بگیم ما با همچین کسای ای کسایی طرفیم شما با میگی زمان کیومرس چیه <تصفح> کجای اینا خب بله من اینو میگم منطقه ها ما اینقدر این نقاط ثابت رو باید محکم بیان کنیم و با اصنات که دستکم بچه که تازه وارد دانشگاه میشن اونا به این استادا بگن آقا تو چی داری میگی جمع کن دقیقا بسیار خیلی خوشحال شدم که اتفاقاً این بحث به این شکل مطرح شد و اون قولی که ما فکر کنم در قسمت هفتوم یا هشتوم بشنم من دکان عزیز داده بودیم که یک سیر نقاط ثابت تاریخی که بتونیم با اسناد بگیم که آ این نقطه ثابت هست و ما میدونیم که چنین اتفاقی در چنین تاریخی توی اینجا اتفاق افتاده. اتفاق و ما نظر اتفاق نظر داریم و سند داریم و سند محکمی که هیچ کس هیچ کس واقع شیشدان هیچ کس نمیدونه برای اون خطی وارد بکنه. پس اگر موافق باشید پس همین بحث نقاط تاریخی رو همینجا شروع بکنیم شما نقاط تاریخی که در واقع ما میتونیم خوش اتفاق نظر داشته باشیم که های تاریخی رو میدونید بسیار ببینید در حد فهرست شروع بکنید <تصفح> نه اصلا مستق... این که ساعت ها زمان من... بره بلی دقیقا بندیداد فرگرد دوم بله بند دو بخش یکم بند دو اهورا مزدا پاسخ میده ای زر تشته اشون جمع بام. هور چهره خوب دقت کنید نخستین کس از مردمان بود که پیش از تو با او هم پرسگی کردم. زرتوش می بله. یک چیز ساده از این ما میفهمیم. بله. جمشید پیش از زرتوش بوده. دقیقاً. آه درسته. دقیقاً بله. از این دیگه پس ما از این نقاط ثابت حالا یک چیزو فهمیدیم. طبق این سند جمشید پیش از زرتوش بوده. حالا ما توی این شاهان پیشدادی کیانی ما اگه دقت کنیم اون چیزی که من از رو اسناد پیدا کردم با اون تاریخ سی و چار زار سالی که گفتم بعد هم حتما میگم بله از کیومرس تا جمشید 6 دوره داریم اینو بهتون بگم ما هر چه به گذشته میریم دوره ها کشدارتر میشه یعنی دوره کیومرس یک دوره خیلی کشداریه سیامک فرواک اوشنگ حالا هر چی میام به سمت فریدون و اینا دوره هست اما دوره ها زمانشون نسبت دورهای قبلشون کوتاه‌تر میشه تا به حال میرسیم که دیگه دوره‌ها تموم میشن و شخصیت آغاز میشه ببینید از کیومرث تا جمشید 15000 ساله خب اینا کجا میشن اینا رو ما باید من دارم اینا این نوار رو تاریخی رو یه شمای رو میگم بله بعد من باید سند بدم دیگه. دقیقاً بله وقتی چندتا نقطه ثابت رو من تعیین کردم بعد سر و تش مشخص شد ای سالا خودش در میاد خب کیومرث تا جمشید 15000 15 ساله 15000 ساله شامل 5 دوره وقتی میگیم دوره‌های کوهنتر کشدارترن یعنی هر دوره به طور میانگین سه هزار ساله. خب؟ حالا دورهای متأخر پیشدادی کیانی حالا می‌میم دوره ما دوره آغاز پیشدادی رو گفتیم. حالا یه مثال می‌زنیم از دوره پایانی کیانی. از گشتاس تا دارا هم پنج تا شخصیت داریم. اما اینا شش هزار سال. از گشتاس تا دارا. ببینید اون پنج دوره رو هم پنج هزار سال شد. بله این پنج دوره رو هم شش هزار سال شد. درست؟ یعنی دوره. هست. اما نو هزار سال کتاه تر از اون پنج دوره اوناست درست. پس این نشون میده به ما که هرچی دوره ها به گذشته تر میره کشیده ستار تر, تر میشه یعنی ما بین یخبندان دومین یخبندان و یخبندان متاخر دو سه تا سه چهار تا شخصیت داریم بله. اما پس از یخبندان متأخر به بعد شخصیت ها خیلی تعدادشون بله. زیاده پس معتقدید که کیومرز دوره ای دوم یخبندان هست پیش از دوم یخبندان هست و جمشیت متعلق به آخرین دوره سیامک یخبندان سیامک بیامد به رهن تنا بله یعنی داره سیامک رو توصیف میکنه تو شاهنامه سیامک تو دوره که انسان ها هنوز رخت و لباس درستی ندارن بعد به دست احریمن کشته میشه یعنی دو یه سرما شده اصلا خیلی روشنه این بله. بیت احریمان و جایگاهش در شمال هم در اصورای ما خیلی روشنه که سرماست هر وقت میخواد بیاد از شمال مارهای سیاه میآفرینه. مار سیاه تو فرهنگ ما یعنی سرما, سرما سیامک بیامد به رهن تنها حالا ما باید نشون بدیم سیامک یخبندان متأخره آخریه یا اون دومیه دو خیلی خود درست. حالا اگه ما یکی دیگه تو ما دو تا دیگه مورد سرما داریم یکی جمشید یکی کیخوسرو درسته ما این سه تا سرمایه سیامک جمشید که خسرومون رو باید از نظر دیرین وقتی باید. گفتیم دیرین حواشی مسی به کار باید. میاد اینجاست اینا رو باید توضیح بدیم ببینید زمانی که یخ بندان بوده دوستان میگن که حالا تا ایران نرسیده بوده من به شما بگم که جمشید زمانی که میرسه به دایتی تازه سرما بهش اعلام میشه حالا ما اینقدر کاغذ با خودمون آوردیم که اون سنده اصلی رو اینجا پیدا نوه. اشکال نداره. ما اینا رو حالا ما اینا رو اگه روی صدای امید هم این ها رو می‌ذاریم این نمودار‌ها رو تا دوستان ببینه. چون متسمان برنامه برنامه‌ی برنامه صوتی هستش و تصویری ما حالا یک پیوندی می‌ذاریم اونجا بتونن بعضی ها رو ببینن. آقا ببینید در زمان یخبندان دمای میانگین کره زمین شش درجه سانتیگراد بوده. سال 1997 نیم درجه در دماغ... بالا پایین شد تمام مرجانا داغون شدن و همه چی به هم و دریا ها و اینجوری شد خوشحالی شد ترسالی شد نیم درجه بله. الان در حال حاضر دمای کره زمین داره وارد یخبندان بعدیش میشه 6 دهم درجه سانتیگراد یعنی حدودا شش و نیم درجه سانتیگراد میانگین دما پایین اومد پایینتر بوده شما ببینید توی اسطوره‌مون حالا بعد اینا هر کدومو میگین چرا اینا من باید سنداشو بخونم در همین وندیداد در فرگرد دوم بند بخش دوم بند 21 خب حالا بعد من تمام متن اینا با توی جلسه بخونم الان فرصت نیست وقتی که سه بار اینها جمشید زمین رو به سمت آفتاب گسترش میده خب یعنی آمدن به سمت جنوب رخ میده سرمای در کار نیست کی میگه سر سرما بوده من بعد سندو بخونم متوجه میشین که فقط اهورا مزدا این زمین چیز میشه جمعیت زیاد میشه اهورا مزدا میگه جا تنگه میگه به سمت جنوب برو همین. در بند 21 میگه که دادار اهورا مزدا بعد اون سه بار بعد اون سه بار به سمت جنوب آمدن ببینیم به کجا میرسن جاشو میگه رسیدم به اینجا دادار اهورامزدا بر کرانه رود دایتیای دا نیک در ایران نامی با ایزدان مینوی انجمن فراز برد خب پاش سرش میگه جمشید خوبرمه بر کرانه رود دایتیای دا نیک در ایرانویجنامی با برترین مردمان انجمن فراز برد یعنی سه بار آمدم به سمت پایین هیچ سرمایه هم خبری نبوده رسیدن به یه جایی به نام دایتیای دا نیک یه رودی به نام دایتیای دا نیک که بعد ما مشخصاتش رو میگیم حالا در بند بیست و دو بعدی که کنار داییتیا مستقر شدند حالا آنگاه اهورا به جم گفت ای جم هورچه پسر ویوانگ هان بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که آن زمستانی سخت مریابر است خب شما ببینید کی گفت سر جم شد به سمت پایین آمد کی هم کدوم یک خردمند انگلیسی میگه که همیشه جمعیت احمق ها به طرز مردباری زیاد است من. راست میگه من نمیدونم این هم سند به این روشنی جلوی ماست صد ساله غربی خوندن که چون سرما شد جمشید آمد پایین خودمون خوندیم چون سرما شد جمشید با آمد بابا سند کجا گفته چون سرما شد سه بار آمد پایین اول میاد پایین به دایتیای های نیک می بعد گزارش سرما بهش میشه میشهقیقا یعنی سر... حالا بعد من جای دایتیای نیک رو در نشص های نده میگم کجاست که شما ببینید سرما تا کجا آمده بوده؟ و اینا اذیت می ناچار شدن ور بسازن بله خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم جناب آقای مهدی گرامی در واقع اولین قسمت اون رسم نمودار تاریخی رو شما شروع فرمودید و اینکه فرمودید که تاریخ حتی به قبل از دوری دوم یخبندان هم میرسه خب این برای پژوهشگران و اساتید تاریخی فعلی حرف خیلی سنگینی هم هستش و بسیاری معتقدن که اساساً بشر بشر امروزی مال ده هزار سال اخیره یا هشت هزار سال اخیره که اصلا بشر اومده در این میان رودان یه سری شهرهایی ساخته و از اونجا خط ما و... تو برنامه برابری با هم بحث کردیم که بله. شکل زندگی انسان امروزی بله. دانشمندان متاخر برای این که از حدود پنجاه هزار سال پیش شکل گرفت بله میگم ولی خب متاسفانه مبرخینه فعلی به این مسئله معتقد هستند و حتی البته برای قبل از یخفندان یا حتی قبل از ده سال فوق فوقش به یک قارهی معتقدن به اسم آتلانتیس. که حالا اونم اومده یه ها یک تلپی یه توفانی یه سیلی اومده اونم از بین بوده دفعتن حالا ما در مورد این مسئله هم صحبت خواهیم کرد. خان دکتر ما در خدمت شما هستیم خوام دکتر احسانی ایران خوندید شما ادامه فرمایشات قسمت قبلی شما رو ما میشنویم چون در مورد مسئله مدار تاریخی ما با آقای ایران مهر فلان کار داریم و بحث‌های ایشون چون که وارد باید وارد جزئیات بشیم چون بسیار حساس هستن به این سادگی نمیتونیم وارد اون بحثا بشیم و ادعای خیلی بزرگی هستن باید با جزئیات و اسناد در قسمت‌های آینده و به تفصیل بحث بشه به سادگی نمیتونیم به این سادگی به بحث بذاریم این مسائل رو شاید مخالفت‌ها و در واقع چالش بحث‌های چالشی بیشتر بشه و از حوصله شنونده خارج هستش این بحث ما در قسمت های آینده وارد جز به جزء مسائلی که جناب آقای اینان فرمودن میشیم ما فعلا در مورد این بحث اینجا این بحث رو میذاریم برای قسمت های آینده در مورد شما حضرت عالی ادامه فرمایشات شما رو از قسمت گذشته میشنویم درود به همراهان برنامه من خصوصا در مورد این اولین زوجهایی های بحث های که بحث خیلی شیدینی هم هستش بله. من خودم خیلی تمایل دارم که همین بحث خوانی رس و پس از اون ایران وج رو ادامه بدم ولی خیلی جالبه اتفاقا من امروز همراهم هم داستان یمه از وداها هست درسته خیلی جالبه وقتی که آقای ایران داشتن صحبت میکردم با خودم گفتم که خیلی مرتبط خواهد بود اگر من اینو اول بخونم چون نه. واقعا جالبه که حالا این حرکت جمشید و آدمیان که در دوران اون زیاد شده بودن گفته میشه بر اثر سرماست و الان دیدیم که ایشون سند خوندن که سرمایی در کار نبوده تا آخرین سومین ومی گسترش هم اتفاق افتاده و اصولا این همون باید بدونیم واقعا متونکوهن به ویژه اوستا اونقدر هم بر ترجمه هایی که الان برشون شده یعنی نمیشه بهشون اتمام کرد مثلا جمشید وقتی که داره حرکت میکنه دو تا ابزار داره همراهش که اصلا وا... نمیدونه اون ابزارها چیه؟ و نمیدونه این داره با اینو چیکار میکنه یکی میگه زمین را گسترش میدهد یکی میگه زمین زیر و رو میکنه یکی میگه اصلا معلوم نیست این واقعا حرکت چه حرکتیه چیکار دارن میکنن این اصلا اما این داستان یه مع این یه که من میخوام به خونم ببخشید من گفتم از وداها من از مهبه ها راته که بله بله بله از مهابهارات ها میخونم اینو میگه که هنگامی که خدایان به انجام دادن وظایف یم پرداختند هیچ آفریده ای نمیمورد ما زمان جمعشیدم داریم که انسان ها خیلی در دوران تلاییشون داشت نمی دلوقتي دلوقتي نمی اصلاً مرگ کردن. نبوده آره در حالی که زایش ها مطابق معمول بود مرگ اتفاق نمیفتاد زایش اتفاق میفتاد آنگاه پرندگان، ددان، گاوان، گوسفندان، آهوان و جانوران گوشتخوار روی به افزایش نهادند نجاد، حالا من یه بخشایش نمیخونم دیگه. آنگاه نجاد بشر نیز هزاران و ده هزاران افزایش یافت. درست همچون سیل آب. و ای پسرم چون افزایش جمعیت چنان هراسانگیز شد، زمین که از بار بی اندازه در رنج بود، صد یوجنه فرو رفت. حالا این یوجنه یه میار اندازگیریست که میگم واقعا این موتون رو نمیشه درست ترجمه کرد نمیدونیم یعنی چقدر بله. فقط داره میگه زمین از بار افضایش جمعیت آدمیان و جانوران حرو رفت و زمین که همه ازایش از درد رنجه بود و از فشار بی اندازه حواس خود را از دست داده بود اندوهناک در پی پشتیبانی ناراجنه پیش روی خدایان برامد زمین چونین گفت به لطف توست ای دارنده شش خصلت که من توانستم در جای خود به مدتی چونین دراز بمانم اما سنگینی بار بر من چیره شده است و اکنون بیش از این دیگر نمیتوانم خود را نگاه دارم بر توست ای خور ستایش نارا رو میگه میگه درخور ستایش که مرا از این بار رهایی بخشی در پی به دست آوردن پشتیبانی تو بودم ای سرور پس لطفت را بر من به گستران اصلا صحبت ها سرما و گرما و هیچ این چیزا نیست. زندگی بشر اینقدر خوب و پیشرفته شده. دوران دوران تلاییه. خیلی همه چیز خوبه. مرگ و میر کم شده. زاد و ولد مثل روال آدیشه. جمعیت زیاد. و حالا اتفاقی که میفته اینجا دیگه مثل اتفاقی که در داستان جمع ما میفته نیست. اینجا ویشنو میاد و زمین رنج دیده را در واقع به حیبت یک گرازی میاد که یک در واقع چی میگن دندان نیش بزرگی داره و زمین رو بالا میاره تو اسطوره هندی زمین سنگین شده اومده پایین پاید. ویشنو میاردش بالا این اتفاقیه که میفته حالا مم. این این واسط فقط خواستم یه جورایی چون همراهم هم بود دلم نمیاد نخونم از جمع صحبت شد اما من میخواستم این بحث خواندیش رو و ایران ویش رو ادامه بدم فکر کنم به ایران ویش که این جلسه نرسیم درباره صحبت کنیم من فقط از خواندیش رو دوباره یک بخشی از بوندهش می‌خونم که ببینیم که چه مختصاتی داره و کجا بوده و چگونه بوده در بوندهش درباره چگونگی زمین‌ها یکی از بخش‌های بوندهش است گوید در دین که زمین 33 نوع است چونان که پیش در فصل زمین نوشتم هنگامی که تیشتر آن باران را ساخت حالا اینا همشون شون تیشتر چیست و اینا من فکر میکنم ما همینجوری داریم صحبت میکنیم فرض و بلین گذاشتیم که همه همه این ایزدان رو نمیدونم این نام ها رو میشناسن شاید لازم باشه آدم در بوره اینا هم صحبت کنه در بوره هر کدومشون هم صحبت یه یه رو وقت بخواه هنگامی که تیشتر آن باران را ساخت که دریاها از او پدید آمدند درباره آفرینش نخستین خود کره زمین بودند زمین را همه جای نم به به هفت پاره بگسست یعنی خشکی های زمین به هفت پاره بگسست دارای زیر و زبر و بلندی و نشیب به شد ای به اندازه نیمه ای در میان و شش پاره دیگر پیرامون آن قرار گرفت یعنی این هفت پاره زمین، یک پاره میان زمین، در میان قرار گرفت، شش پاره اطرافش رو گرفتن. آن شش پاره به اندازه است خوانی خوانیرس اون سرزمین میانیه، اون شش پاره دیگه که دورش رو گرفتن سرزمین های اطرافش همون تا میگه از نظر اندازه خوانیرس اندازه همه اون شیشت هست. ابعادی که میده، ابعاد بزرگه در بود. او آنها را کشور نام نهاد زیرا ایشان را مرز ببود چنان که پاره ای را که به ناحیه خراسان است یعنی شرق کشور ارزه پاره ای را که به ناحیه خاوران است یعنی غرب کشور سوه دو پاره را که به ناحیه نیمروز است یعنی جنوب کشور فرد دفش و وید دفش دو پاره را که به ناحیه ابهاغتر است یعنی شمال کشور وورو برشت و ورو جرشن خانند این نام این شیشپاره اطراف خوانیرس هست آن را که میان ایشان و به اندازه ایشان هست خوانیرس چون این گوید که میان ارزا و سوا یعنی شرق و غرب ارزا و سوا و خوانیرس دریاست چونان که بهری از دریای فراخ کرد پیرامون آنها را بداشت از میان فرد دفش را بیشهی گرفته است. میان ورو برشن و و کوهی بلند برست که تا از کشور به کشور پیوند نبود میگه که این موانع ایجاد شده بود که از کشورهای مختلف از این خشکی پیوندی نباشه نتونن به هم دیگه برن و بیان تا از یکی به دیگری رفتن نشاید و خلاصه حالا اینا رو توضیح میده این مختصات رو توضیح میده و میگه چونین گوید که بیشتر مردم در خوانی رسند و خوانی رس تر است. پر جمعیت, جمعیت بزرگتر، سرزمین میانیست و مختصاتش هم توضیح داد حالا کسایی که علاقه منت هستن البته من الان همه چیز رو دارم همه اینا رو دارم از بندهش میخونم و متون دیگه هم داریم همه چیز بندهش نیست شاید حالا اگر لازم باشه توی جلسات بعدی از متون دیگه هم استفاده بکنیم اما فقط یک بخشی رو نمیدونم چقدر زمان هست ولی یک اینم. تون تون میخونم من. من حالا ان شاء دفعه بعدی درボルشون توضیح داده میشه میخوایم ببینیم که بر اساس بندهش میگم اینا بر اساس بندهش هست من نمیگم اینایی که من دارم میخونم حرف اول آخر رو داره میزنه یک متن کهنه ای که حالا نسبت به متون دیگه شناخته شده تر رو با ارزش تر شد زردوشت این کشور خوانیرست و نیز همه پریزگارانگیتی را سرور است. همه این سروران را نیز سروری از زردوشت است که ایشان همه دین از زردوشت. بازه حالا اینا را کار نه اینا مباحث دینی شه. در کشور خوانیرست بس جای است که در این بدزمانگی و نبرد سخت پتیاره به افسون مینویی گذر آن بسته است. که پناهگاه های خوانی رست خانده میگه این خوانی رست یک سری مناطقی داره پناهگاه داره که فعلا به اونها گذر نمیشه کرد به مانند آن کشورهای دیگر چون کنگدج و زمین سوکوستان و سوکوستان همون طرف های سوگده اونجاست و دشت پیشانسه رود ناوتاز و ایرانویج و ور جمکرد و کشمیر اندرونی کشمی، کشمیر هند منذار شست. آره ببینید برداشت من از این متنال از این بخش اینه که ایران یعنی یک بخشیست از خوانیرس یعنی ب... من فکر میکنم بر اساس حالا متونی که من در ذهنم دارم ما نمیتونیم ایران رو منطبق مرزهاش رو منطبق بر خوانیرس بدونیم نمیتونیم خارج از خوانی رست بدونیم شاید من میگم حرفای من از همین تریبون اعلام میکنم حرفای من هیچ کدومه صد در سرد نیست من نمیگم این حرفی که من میزنم اول و آخر همه حرفای جهانه من دارم یک سر سند کوهن رو میخونم فقط و واقعا خودم نه تاریخی دارم مثل مثلا بقیه دوستان که بخوام برای دوره های تاریخی که داریم تاریخ بدم جدا ندارم چنین چیزی و اختلاف نظر خیلی چیزی هم با کسی ندارم یعنی واقعا خود من هم ممکنه توی همین برنامه مباحثی رو بشنوم و سر یه چیزای متقاعد بشم یا یکی سری از باورایی که داشتم رو شاید مثلا سست بشه به یک چیزای جدیدتری مثلا بیاندیشم همه اینا هست من اصلا اینجا نیستم برای اینکه حرف اول و آخر بزنم ولی خب تصورم فعلا فعلا تا اینجا این هستش که ایران ویز باید بخشی از این خوانین راست باشه البته در مورد محدوده‌ی همین خوآنیا راستو ایران وج خب هنوز فعلا بحث دارین در رابطه در جلسات بله بعضی از, از, از متونه دیگه اصلا دکتر من در حد 5 ثانیه نکته اون ناحیه رو که خانم دکتر گفتن حدود ناحیه سوخت گویا باید باشه بله. دکتر جانش درخشانی البته اسناد ارائه دادن که این در شمال خاوری ایران نیست و در جنوب خاوری ایرانه. بعد به موقعش اونو بحث می‌کنیم دیگه چون واقعا باید این جغرافیا رو به دست بیاریم بله چینو باقای فیروزی یه حدودش 5 الی دقیقه شما فرصت دارید ماش اصلا کوتاهر از, از اینم صحبت کنم نه خواهش میکنم ارزم خدمتتون ببینید به نظر من جلوی این خلاصه‌گویی شما رو خواهیم گرفت الان اجازه نمیدیم خیلی چون خلاصه بگید به نظر من ببینید ریشه نه. این صحبت ها که الان ما با هم درگیر هستیم و قبل از ما خیلی با همدرگی بودن تو کار... دو تا موضوعی که کارهای اردشیر بابکان که مسئولی نوشته یکی در واقع اتفاقات مذهبی است که در این مملکت جدا از با بابکان رخ داره مسئولی نوشته اردشیر بابکان به یه علت مذهبی گرفت یک سری از اسناات رو که دستش رسید یا خیلیششون لتش نرسید حال میگم ب بله. گرفت اینا رو قبل از این ها رو کوتاه کرد یه سر پ چه هست کرد سالها رو کوتاه کرد هست کرد بعد کم آور سال یع اینکه بین کهیه گشت دا تا اسکندر سال کم اومد م این رو پر کنه بعد اون باید نوشتهیکی خواهیم گفت که چرا ایرانی سال های این پادچانه پیش این رو می افزایند بعد میاد میگه که بلی این اتفاق افتاد و بعد این سالی عجرق های پیداشون شد. بعد حالا بعد این اتفاقی که ایشون توضیح میده حالا ما میفهمیم که چرا آیه بیرونی داره گیج شده میگه گی من اصلا باور نمیکنم این ساله پارسیای میدن چیه ولی مسعودی اینو میدونسه خودش هم میگه گی. میگه هیچ از این اتفاق خبر نرد جز مسعودی صاحب مروجه ذهب ولی اینو در اه... کتاب التنبيه شاف نوشته بل. بعد میگه که هیچ کس نه فقط من میدونم من تو یه کتاب سری خوندم این قضیه آریشی بابکان دست به این کار زده و این ساله عجایب پیدا شده بعد این اتفاقی که آریشی بابکان انجام داد همه رو گیج کرد اتفاق یعنی واقعا همه گیت شدن که حالا از زمان حتی بیرونی این قضیه که آقا ما اینا رو چی کنیم اینا رو بدونیم اینا رو دوره بدونیم یا به های کارش رو بکنیم مونده بود و بعد میگه حالا هرچی دا من دارم می نویسم این بیرونی می نویسم و خیلی جالبه اونجا 6 تا جدول ردیف میکنه یکی از جدول سالها طبیعی است این قضیه رو حل کرده برای ما یکی از جدلب دقیققا میاد مییم بهان ببییرونی دقیقا میاد میه که, بیرونی؟ دقیقا میاد که، کیقوادی که 1 120 سال بیشیین متون حکومت کرده اینجا ش نه سال حکومت میکنه این سال طبیع هنوز رو یک سند ای که دست سرشیری با بکان بهش نرسیده رسید این حفظ شده ما اینا رو داریم یا حتی بعض جااد جمعی بنده اما جمعزارش و خورون ود دست بیارییم بله. سال های طبیعی وجود داشته باشن از نظر این سالها که ما این دلیل اساسی که ما فهم کنیم و دوره عوره ما اینجور اینجوری رو جمع کنیم دیگه نمیشه چرا کنیم که بعد دستا رو بالا یا بله توجیه میکردیم میگفتیم حالا توجیه جدید این 20 سال اخیر این بود این دوره بوده ولی وقتی سندی وجود داره که این دلیل وحشت رو حل میکنه ما الزاما نمیخوایم نمیتونیم دیگه بیایم اینو عقب نشینی کنه ببینیم حال توجیهش دور است نه این قضیه حل شده اما بله این کردارهای این افراد قطعاً دارای شاهو برکاست اسطوره‌ای شده، نمادین شده و خاطره شده. بله ما می‌تونیم کیکاوس، یه کاووس اسطوره‌ای داشته باشیم، یه کاووس تاریخی. کاووس تاریخی کسی است که لشکر می‌کشه مازندران. بله. ولی کاووس اسطوره‌ای که از این پرواز کنه. یا جمشید همینطور طور. درست. اینا همه‌شون زندگی اسطوره‌ای دارن در همه دنیام این شاهد برایشون هست ما دقیقاً یه عرفی اسطوره‌ای داریم که می‌خواد بره دنیای مردگان در زیر زمین. معشوقه‌شو برگردونه یورفی تاریخی داریم با زمان و مشخص و قطعا در دوران در یونان کوهن بیش از یونان باستان که این بهترین چنگ نباز بوده یعنی ما هم بعد ببینیم به این حرکاتی که دیگران کردن دست بزنیم برای تفسیر اینها و بعد بریم بقیه رو دونه دونه حل کنیم صالح اسطوری میتون زمینیشن طبیعیشن زندگی‌هاشون دو دسته میشه زندگی اسطوری به کلاس ادبیات عرفان اخلاق و اسطوره‌شناسی بحث بشه باقی می‌ونی با. ولی یه مشکل دوم این است که این سرکوبی های مذهبی که در فلات ایران شد از زمان بعد از زرتوش تا بعد از اون دیگه که خیلی تابو شد در ایران که ایرانیان چند خداپرستی نبودن و حتماً یه خداپرستی بودیم خدا خدایان داشتیم وقتی این داستان خدایان سرکوب شد مثلا همه دنیا که ما دیگه اسطوره خدایان نداشتیم مونده بودیم چیکو بکنیم اساطیرمون چهانه قهرمانانه ماشون اسطوره دیگه این سااله اسطوره ای بود چه بهتر این توهم رو ایجاد کرد برای مثال مثلا قرب داستان خدایانش اساطیره نه داستان شما پهلوانشون بلنه. بلنه. ولی ما تنها مملکت در دنیا که شما پهلوانشون اساطیر و این میگم ریشش از این دوتا مسئله است ولی وقتی این داستان خدایان برگردن ما دیگه این قضایی رو تو اصول نخواهیم دید quasi ye jamshid ببینید در اوستا من فکر کنم دوستان این جمله رو زمان گذر زمان در نظر گرفته نه آمدن زمستان ولی متن اوستای ترجمه دوست خاص میگه آنگاه به شرج جم 300 زمستان برآمد زمین پر شد از ستونان و فلان و فلان و فلان سرما غالب بوده ولی سرمای خیلی قوی نبوده که اینا را راهشوار داشتن میگه 300 سال 300 زمستان سال اسطوری 300 تا گذشت اینا 600 تا گداچه داشتن 900 تا گداچه داشتن دیگه بعدی سرمای بعدی دیگه چاره‌ای نداشتن که رفتن تو پناهگاه ور جم کرد جمع کرد ولی سرما بوده جمشید زمانی که اومد میگه مملکتش دچار سرما بوده اینا هنوز بیچاره بودن یعنی از سرما هنوز که فلات شف... ایران یا هر جایی که از شمال شرق فلات ایران بوده دچار سرما بودن اواخر یخبندان تمام شده بود این سرماهای پ... بعد از این یخبندان بوده و بعد ما می‌بینیم که اینها دیگه حالا یواش یواش مملکتام میره به گرما تا اونجایی که دوران کیخسرو اینا در کوی دشاره سرما میشن نه مملکت دو سرما باشه در کوی دوشار سرما میشن بوران میشن و کیخسرو دست سرما میمیره به همراه همراهانش بله اینا ما به نظر بگیریم که قاطی نکنیم مسائل و. اون سرمایی که قبل از جمشید هست هیچ ربطی با سرمای زمین کیخسرو خورش جمشید نداره یک و ما کیومرس بله اینا همه اسم نام دارن حتی اسم کوروش این خورشید پس معنی خورشید کوروش این خورشید بوده نه معنی اسمش این هست کیومرث معنی اسمش خیلی چیزا میتونه باشه معنی قطعاً اسطوری بودنش نیست که این که میگن جمشید و تحمردس که آل آرمگاهش رو رؤیت کردن این یه نصف حاصل داره با کیومرث این بابا بزرگ یا جدش توهم بوده و خالص موجودیت داشته به نظرم منطقی نیست بله پس با این حساب شما دوره آغاز یعنی کیومرث رو آخرین دوره یخبندان میدونیم پس این سرماهای این در واقع ترکشوی بعد از پایان آخرین یخبندان هست یعنی از یخبندان جدا شدن دقیق این جدا شده. برای قبل از دوره دوم یخبندان شما آخرین دوره یخبندان بره. بره. که ده هزار سال پیش به پایان میرسه اون چیزی بوده اینا گروه آخر... یه گروه از آریایی ها با... یاکان ایرانیان اومدن به فلات به فلات ولی اون نواهی فلات هم هیچ می می‌شده درسته و اون مملکتی که کیومرث ساختن تا جمشید دو گرم و سرما بوده بعد از اون دیگه ما شکایت سرما نداری فلات رفته به گرما دوران پرباران از زمین شناسی تا کی تا دوران خوشحالی 1400 که فلات میرو خوشحالی یک زمانی خالی. برای مرس و جمشید حدودی بدن تا قسمت 1400 بدونیم با شکاکونی من تعدادی میگم اگر اشو زرتش به دلایلی که خواهیم گفت هزاره 7 اواخر هزاره 7 پیش از میلاد باشه این 14 15 آلتدایشون بعده کنیم 11 یا 12 پاشا قبلش کیومرس این 6708 یعنی چیزو... سال پیش از میلاد به عقب‌تر نمیتونه یعنی یه چیزی 8000 سال پیش از میلاد 8000 کیومرس کیومرس, کیومرس هزاره... سال پیش بله دو سه سال بعد از آخرین عصر که تمام میشه بله. خیلی بسواره. اختلاف خیلی زیادی هستش 34000 سال سال پیش بله. و 8000 سال پیش و در این مورد باید بحث بکنیم شاید به نظر شنوندگان بسیار عجیب و غیر طبیعی بیاد ولی خب قرار سنمون مثل هم دیگه فکر بکنیم و تا اونجای که من بیدام آقای کریمی هم تا حدودی از دزدهاز تاریخی و عددی با آقای فیروزی با آقای ببخش ما ایران در واقع نزدیکتر هستند. هستن شروندگانی گرامی وقت برنامه رو به پایان هستش ما نمیتونیم بس اعدام بدیم ولی قسمت های بعدی ما باید روی مسئله توافق بکنیم و به یک جای فهم مشتق یا به قول حابرماس به یک فهم بینوال ازهانی برسیم و بتونیم با دلایل و مستندات تاریخی یک مبدع تقریبا حالا نمیشه گفت دقیق که نمیشه پیدا کرد شاید مثلا با یک اختلاف مثلا 400-500 ساله برسیم نه به اختلاف مثلا بیش از 15-16 هزار سال برسیم شنوندگان گرابی رو به خداوند متعال می سپاریم و قسمت 14 هم ما این بحث رو ادامه خواهیم داد خدایی ها رو نگه داره.